دکتر هدا هستم دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه و پزشکی شهید بهشتی با مجموعه پادکست‌های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک در خدمت شما بزرگواران هستم در این اپیزود می‌خوام در رابطه با فواید زایمان فیزیولوژیک و هورمون‌های اصلی روند زایمان صحبت کنم زایمان قدمتی به اندازه عمر بشر داره حقیقت اینه که زایمان طبیعی اصلاً کار ای نیست اما بدن شما برای این امر مهم قابلیت لازم رو داره. خلقت بشر همانند بقیه مخلوقات خداوند بسیار دقیق طراحی شده. قدرت زایش با شما متولد میشه و با شما همانند بقیه قدرت‌های خدادادیتون باقی میمونه. وقتی شما بدون مداخله غیر ضروری زایمان می کنید به خوبی به قدرت و توان درونی خودتون پی میبرید و اعتماد به نفس در شما افسایش پیدا میکنه و یاد میگیرید که حتی در شرایط بسیار سخت در زندگی هم چگونه به توان خودتون متکی باشید وقتی به قدرت و توانتون پی ببرید از این پس دیگه نحوه برخوردتون با دردها، بیماریها، خستگیها و مشکلات کاملا متفاوت میشه وقتی شما بدون کمک گرفتن از داروهای بیدردی و یا بیحسی و مداخلات دارویی زایمان می کنید دیدگاهتون نسبت به مادر شدن متفاوت میشه و درمیابید که این نوزاد رو با زحمت زیاد به دنیا آوردید و با سختی زیاد هم به ثمر میرسه. علاوه بر این زایمان یک جهش رشدی در شخصیت شما ایجاد میکنه و منجر به یک بلوغ فکری در شما میشه. شما به توان خودتون برای اداره وضعیت های پیش روتون و پذیرفتن مسئولیت اطمینان بیشتری پیدا میکن. زایمان فیزیولوژیک به مادر و به شما این فرصت رو میده که محل زایمان وضعیت زایمانتون همچنین پزشک، ماما و همراهتون رو خودتون انتخاب کنید. و هدایت شرایط وضع هم رو خودتون به دست بگیرید. در غیر این صورت کنترل وضعیت به دست دیگران میفته و اونها هم بر حسب نیاز تصمیم گیری هایی رو از طرف خودشون انجام میدن و دیگه شما تصمیم گیرنده در این زمینه نخواهید. یک سری هرمون ها در روند زایمان تأثیر دارد. همانطور که عمل لقاه و رشد و نمو جنین در بدن شما معجزه است عمل زایمان و به دنیا عمدن این موجود کوچک نیز یک معجزه بزرگه بدن شما برای زایمان انقدر دقیق طراحی شده که چیزی کمتر از یک معجزه نیست دستگاه‌های مختلف بدن اون چنان با هم دیگه تعامل و همکاری دارند که واقعاً حیرت انگیزه البته اگر با دید عمیق و اعتقادی راسخ به اون توجه بکنید یکی از مهمترین وظایف زایمان بر عهده سیستم هورمونی بدن هست چهار هورمون اصلی در زایمان نقش دارن که این هرمون ها عبارتند از اکسیتوزین یا همون هورمون عشق اندورفین یا همون مخدر بدن که بهش هورمون خوشنودی هم گفته میشه، اپینفرین و نوراپینفرین که های تهییج و برانگیختگی بدن هستن و هورمون چهار روم هم هورمون پرولاکtin که هورمون مادری هم بهش گفته میشه. این چهار هورمون با هم سمفونی بسیار زیبایی را در بدن شما اجرا میکنه. فعالیت این هورمون ها تحت نظارت سیستم لیمبیک یا مرکز عاطفی مغز هست. این مرکز در قسمت میانی مغز قرار گرفته و برای اینکه روند زایمان بتونه با بیشترین پتانسیل خودش پیش بره این قسمت باید فعالیت بکنه و فعالیت این قسمت باید بر فعالیت قسمت نیوکورتکس یا قسمت منطقی مغز تقدم پیدا بکنه یا به عبارت بهتر باید آتفه بر منطق پیشی بگیره برای برقراری این وضعیت و برای اینکه مرکز عاطفی مغز خیلی خوب عمل بکنه و منطق جای خودش رو به عاطفه بده مادر باید در محیطی آرام با نور ملایم و کم صدا قرار بگیره وقتی که شما در چنین محیطی قرار بگیرید به صورت ذاتی شروع می کنید به حرکت کردن، حرف زدن و نحوه تنفس شما هم تغییر می کنید و شروع می کنید به گرفتن وضعیت ها و حالتهایی به خودتون که این امزایمان شما رو راحت تر می و این همون شاخصه ژنتیکی هست که در بدن تمام زنان نهادینه شده. اما اگر شما در معرض اقدامات روتین و غیر ضروری قرار بگیرید مانند اینکه آمپول فشار دریافت بکنید یا داروهای ضد درد برای شما تجویز بشه یا اینکه من بدون حرکت روی تخت دراز بکشید و حتی اقدام به سزارین بیدلیل و جدایی شما از نوزادتون باعث میشه که این روند زیبا و این سمفونی زیبا شدار بشه و آسیب ببینه